داد پدر هم نام نشد اینجا پی شکم مامم خواهرام نعنا بابام بابای بابام عمو اصغر پسرمو جناو فاری که تا دو سال پیشندمون بود مادرام عمون خونش فرو دارم. زن امو راضی بود <تصفيق> امو خوش بود امو <تصفيق> میشه من خصوصا که بعدش پسر امو مهران که همه کلافه را جهشی کنده بود و کچکتر این دکتر امو بود تو یکی از تخصصا قبول شو. شیرینی با فقط فقط، خلاص، خلاص، خلاص، اجازه کشمشو من اون کشمش خورما هم نمیتون. تا اینکه خورشید من که آفتاب ندیدم آخه چشممو می زنه؟ چه برسه به پش؟ ولی مامان میگه خام که به دنیا اومد عین او پنجه آفتاب بود. واسه همین اسمشو گذاشتن خورشید ع انامقدر خواستگاه داشت که 13ده سالگی ازدواج کرد. یعنی از الان من سه سال روز این چهر خالممون گاوداری داشت؟ پول دارم من. یه روز که معلوم نیست که چی خورده بودن با هم دعواشون میشه شهر خاله وسط <تصفيق> نمیدونم به کجا شاخت میزنن فقط چنینم که شعر خاله دیگه خاله شده بود بعدم هم منیش همه اون گابا رو کنوختن تا خوب شه وقتی دو سالم بود البته من تو سالی که 365 روز داشت دنیا اومدم و هر چهار سال یه بار تولدم بود اما مامان دلش خواست دمسان تحویل تولدم و بگیره که شایر خاله دقیق کرد و مرد. دیگه هیچ وقت برام تولد من حالا خاله دیگه نگوشته گاف خورد نه شیر و ماست و پنیر. کیپ و کپشه چرمم نخرید. اصلا هیچ شدونه جز بجز. خاله سیزده سال نوت ماهش بود که سعید و زایید. برای همینم بهش نمیاد که پسر این داشته باشه سعید هم پسر خالمه هم نامزد خواهرام میدونم با توپ نمیشه چیزی رو بید ولی بابام یه ناف سعیدو با توپ بریدن هر کاری بلد با توپ بکنه اما قرار آتش نشان شد. قصه دارم ولی نمیگن برای همینم هم از که خیلی نمیشنسی میشون اما یه وقتی یه جایی که ها هم گیره میخورن اون وقت اگه نخون بگم هم همون میفهمن دم. ولی بهش گفتم فهمیدم حالا هرچی میدونم و میدم؟ تامسا تامسا افطین اشی افطین اشی افطین اشی کی از میشه که تو بابا اینجاست اگه اینجا بود که من اینجا نبودم چه تو رو خدای زره اینجالو این برای خالو فارسی تا دهنی سمور خودت بگی اما تو رو در آبداری می‌خاشه کلفه ده سه‌شنبه که مامانم سایه رو عروسی چه علان پوشیدی؟ اونم تو مدرسه پوشیدی؟ نه، رفتم خونه واسه نخوام. من دیگه دارم برشون لطف همه برشون سر بگیرن برشون بگیرن ساعتیه لباس ورزشیم بوق میبرم. آه بوق میبریم. باید دادم ورزش کنم. یه مارش کنیم. اما حالا حالا شنیدیم چیکردی؟ یک رقمه استاد کمی زود. عشقمو بفرمایید، خیلی خوش اومدید. بفرمایید، بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید دل بفرمایید تا لطف نکنی، خیلی خوش بفرمایید، بفرمایید. قرب شما. رونی چجوری؟ نباشید، خساره نباشید. همون خساره نباشید، فضا چاپورونه ببر. خساره خیلی ممنون، بفرمایید. ایشون باشن چه رأی انداختن؟ اگه خاش که نشده است اینجا آخا هم میگیری بفر بگیریم آخای خاش که نشده حالا تو هم اینقدر میگیر خات روپات رو رو بری رو چی بریم یعنی چی رو یا این اثار رو بگیر تا بعد هم ببرم زکتو از اما فوتبال حرفهی همینه دیگه پیش میاد دیگه تو که فوتبال کردیم اگه غیر اینه نه این فوتبالیس این هست با است از پاشتی سیست باید تمام، تمام. البته برای برحال مادر مادر آب آبا بخواه زشت بریم تو زرین زشت که بابا تاشیم دیگه پاشت رو بزارم بخواه شو تو بپرمایی بپرمایی بپرمایی بپرمایی آبا خیلی دلم میخواست منم یه طور بشه تا با منم توجه کنم توی رامیان مردم شاید اسم همه بلد نباشن ولی همدیگر رو میشیدن آخه اینجا قبلا بخش بوده بعد شهر شده حالا این شهر یه تیم فوتبال تو لیگ دست دو داره همه از خوشحالی یه جا بن ولی آدم گنده های شهر اومده بودن و همه چیز جدی بود. تا اینکه بعد از شام رفتن و هر کی هر چی تا شروع کرد. داداش خسته شدی حالا حل بیتی بیا یک سیگار از ما بگیر نه نه داداش خسته نه آخرش دیگه چه خبره بایی یه ذره ما قول عمل بده دیگه دیگه بایی سیم ما خدایا بده داداش بگی خسته نیست بریم آبر شما گرد دمتون گرم دمتون گرم بفر بفر ان شاء الله آ دیگه برسب دوام کنید دمتون گرم ماشالله می میخونید آره دیگه جای دیگه دارم برم نمیذارم من یه جای رو اجاره چه مگه خودم بچه‌ها ناراحتن دستچیته حیات. اینطوریه که به نظر من با دستچیته حیات باشه. رو تاه تاهم بود باشه. چیه وسط خونه اونم با ترس و لرز. دستچیته حیات شرطا رو ما این نیمه دوم دو سال همش تماشاشون آویزونه. میرن دستچیت برمیگردن سرما خوردن. دستچو بعد داخل امارات. آها از بغل دستچو اومد داخل عمارت. احتراما از بین رف شب بخیر. شب بخیر. حالا ما هر چی میگم دادا شما باز حرف خورتو میزنی. باشه. خیالتم راحت که من پیش آقا جونم آقا میخوای خبر مرگم من با خانواده‌ام پاشم بیام اینجا بعد بفارم برای تو خونه بگیرن حل شب بهت راقم بفرمایید آها تموم شد دیگه من بیام دادش، اینجا شب بهت تا بسپاری با خورشید صحبت کن اون من خونه ساختمون به چه بلرکی خالی افتاده و دستوری داخل خونه تو مغازم دو قدم راهه وحشی میره وحشی بهر میگه باشین دو قدمه میخوای وحشی بریم وحشی بیای خشتاک تا بابا جانات یه خور برو ورت شب حرف مرغناس برو بابا جان ببین تو دیگه من آره نه واقعا فکر می‌کنی من خرم؟ بابا من یه تیمو از دور نگاه میکنم آنالیزش میکنم تو چی فکر کردی پیش خودت؟ من روده های تو رو وجب زدم. این همه خونه‌چرا گیر دادی به خونه خورشید؟ ها؟ آخه اکبرم، جانت رو بیشم، یه خورده عاقل شو، بزرگ شدی. توی پدر مجردی، یه آدم عذبی، خورشیدم که بی واسه همینجوریش دارن برامون حرف میارم منم که تیمم رفته لیگ دست دو. اکبر شوخی نیست میگه دست 2. سکه هم دادم. اینا تو چشمم هوای من را داشته باشتی؟ دیگه من را دارم همان بست دارم براتونه بگیرم شب خیف ای باید بودی زرنه میدیدی همه با... همگاه که شوهرت به چی کار گرشه با, با... با منم <تصفيق> باید نگین این همه همه نامونه از من آخ دارم بیا برای یه روزی به بابت میگم من بخاطر تو رفتم فوتبال بازی کرده دیگه اینکه علی شوارع یه روزی انقدر معروف شه نه یعنی نه عزیزم همه بازیاتون مستقیماً نشه دیگه در زنده مهم نشه دیگه هی دیگه خودت چه جوری توپ ننداش اگه ننداخته بودم جوری توپ که الان گل شده بود یعنی خبری از این برنامه‌سازا ندارم رفت سه دو همین دست سه بعد بازی می‌کنن درد داری نه تو ورش توش <تصفح> دارم <تصفح> آها ولیش درد داشته وایس وایس وایس هستم درد باشه یه دردش میخواستم زمینه زمین و گاز بدن خب بعدش پیشناده دیگه شد از باشگاه دیگه یادم رفت یعنی بری یه چه دیگه بازی کنی؟ این های مدت بداره پول بازی کردم برای هم تازه بعضی میموها پولم دادم میری؟ اگه پول بخوام آره بیگم میخواهد؟ تو همستون چه خبره؟ سلام. سلام، سلام. قبول نشتم. قبول اجازه. چرا دیل ولی اون نمی‌کره اینکه همین مردم تا دیروز یه لیوان آب دستمون نمی‌دادن. تو چه یادت پول مینی بوس هم خودمون می‌دادیم این مروام رو گرفتون. الان میگن مینی چیه؟ اتوبوس سوار شما آبروی شهری. دیگه تعریف و تمجیدان یادتان نمیاد. اونا که آره بابا این جوون مولانا رو میگم. نمی دونید چه بزن به رختی <تصفح> <احنا> بابا. حالا <تصفح> فیلم مولانا بگیرم منشوری بشین. اینم بهم دادن. دورینم بده ببینم. دادا تو دا دا دا دا رو خدا بده. تمامم هست. یسمن مرا تطت کولام. نه نه اسمن برای چی؟ ترا فقط ببخشید من نتونستم تو اون شلوغ و کلوغی که درست حسابی بات بکنم. الان من منم بو عرق خورش چیلی اینجاست؟ ای؟ اینجا چیکام میکنه؟ سهر داوت خواه علیک خده هم ببر خده شما تو سرت خیلی شلوغ نشده یه قرار بذار بچه ها برای عقد کنن خیال مراحت شد بذار اولاتواشنشانی استخدام شد یه قندو هم بده او. این قاپ پولای گنده گندهش پیشنهاد شده به تیم‌های دیگه اصلا حقوق آتش نشانی پیشش هیچ چی. تیم بر لیگ دسته که موقع تازه میفهمیم پول چی اینا که پول نیست. خب پس چی میگی دیگه؟ سکه رو نشون بده. چی؟ سکه دادم بهش تمام. <تصفح> بس مبارکه. خب چی؟ بخاطر همین میگم دیگه الان که تنور داغه باید به چاشون استخدام بشه. بعد ما نامه می میگی بابا ما اینو احتیاج داریم برای تمرین. حال کار نمیره حقوقش هم میگیره یه 15 سال بعدم که فوتبال گذاشت کنار حقوق بازنشستگی میگیره بده؟ نه بابا داشت اینو فقط من تا کی این بچه بگم سب کن من بچه خودم بهتر می‌شدم داوود خدا این هر کار میکنه واس خاطر ناناس بیا خودت جلو توپ تیکی و پکت واس کی بود واس خاطر ناناو تیکیه عوضش اسمش افتاد سر صبونا اگه امروز تو مردونه بودیم میدیدیم که همه دارن افاق آزادتون تریف میکنم شما مگه تو زنونه بودیم میدیدیم همه همه میپرسن که که عروسی میکنن که عروسی میکنن خب من باید یه بتونم بدم دیگه نه خیلی <تصفح> <تصفح> بود خواهن سعید اینجاست آره دیگه واسط با هم دیگه بریم دیر وقت بود اما کجا دا ایران با... کجا بایستده؟ با, تو هم با اون پاش؟ نانا کجاست؟ تو با انباریت بابا جان مگه نمیخوای بری الان بگیری بخوابی خب واسه چی میخوای دکمه اینو ببندی خب بعد در بری بری گیریم بخوابی دیگه کجا انباری بابا اینه نام زدم دارم بهم حرف میزنن اگر عقدم باشن حق ندارن تو خونه من برن تو انباری با هم دیگه حرف بزنن آبا. من اونجوری خودمون اینقدر دوره جوونی رفتیم تو انباری با هم دیگه حرف زدیم که دیگه حساب کارو من دستم بودش بالا چرا برشت زرست میکم در در هم به هم بچم بیا میانی مریه بخورم نه امی مریه بخورم نه اون مریه رو بخوری یه وقت ترشت نکنه شما اگه تو قرار نبود بری خونتون مسکشم بخوری پاتو درست کنی استراعت کنی اون موقع اومدی توی همباری خونه من لباشک میخوری پاتو درست کردی؟ بفرما این شب بخیر نه من کده کار خوشی جون تموم شده اتفاقا کار خوشی جون تموم شده ایشون منتظرن کار شما تموم بشه بفرمایید ما کاریم نمی‌کردیم ما بفرمایید نشیم شما حالو شما کارتون تموم شد صحیح بفرمایید بفرمایید شب بخیر بلیشون خودش میره میشه قبول کنین دو با هم نام زدن اگه نام زدن واسهت حیات نامزد باشن تو انباری واسه چی نامزد واسه میکنن گفتم که رفتن لواشک تست بزنن تو پرمسره دارن لواشک تست میزنن یا دارن واسه کنکور تست میزنن من خودم همین این تستا رو زدم خانوم بابا ما که حرفامونو زدیم ببین هفته بعد ساعت کی خوبه اینا برای عقد کنن ایشون اخیالش راحت چه اینا دیگه این تس می تستو میزنن تست زدن یا برن تشریحه علش کامل فکرش خدا افساله خدا افسه خدا افسه ساکتو نبردی ساییم برد هنوز شارج داری؟ بله دار خوبه که داری گوشت صبح بذار دمه دسته میخوام بهت زنگی بزنم یه سر زدتر باشیم بریم دفتر دست شما در نکنم برو به سلام خدا بزاره اونخوام آبا خب زشت تا شل بیاد سر مراسم عقد ما مردم چی میگن؟ والا به خدا نهلا که نیست تازش خوب باشه خشکش خوب باشه تو ماست خوب باشه تو دو خوب باشه تو سالات خوب باشه بابا نهلا سرش دعواز جون بیا داره بابا نمیخود تو ببندی دستتو بشو نسمتو بزن نبازتو تو کمور بخوا نهلا بله که من مخصوصا که بزنه و بارو نگیم هر بهت گفتم زنگ گوشی به زنگ گوشی من نباشه حالا سلام باشی نه باشی آخری داری میانیم عکس درفتیم میگه نه نه نه با شهر خاله میگه با شهر کجا میگه با شهر خونه شما ساعت روز عقد رو چرا پا نگفتی نفرسی نه بعدا فکر که گفتی عکس گرفتیم یه نه نه گفتی نه گفتش که پا چیکسته گفتم نه نه دروغ من نه چیکسته زروق؟ به خودی چهر نگرمش بکنه هر شد تهران یک نشون بریم دروب. خب به قول خودت فکرون رفتیم تهران اونجا هم نشون داریم خب فرقش چیه؟ فقط تهران مشکلش میدین این چیه؟ درمادرسگاهاشون پیشرفته تره دره با که به چشم بیاد. تا حالا چند نفر را دیدیم به خاطر امین نازی فوتبال را دو فشنگلاب چیانا دارم؟ خوش آماره بودم سویش بگو دیگه چند نفر بگیریم اما بهتر کل کشمه های دنیا کشور های تو بکش بابا موهین ستار بکشه ستار موهین را بکشه با. بکش بابا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 siz de bistolar ekar aga bela kara omadam moham kuta kunam sari miri besim besim vermezler ter biya ya başa heyfe in moham ni xayir خوارم قضایو دادن هاجقا ببین کی خوبه وسط عبد الصهید و گفته منم برم اون. دیگه همه سالا جواب دادم هیچ سوالی نداشته باش اینا عروسی کنن سعی زنشون برای صاحبون تالارساز دستشو کشه اینا عروسی بزن اخ کنن حالا سوال دیگه نداری انشاءالله این کارتو برام بکش 5 تومن 13 صبح یه چیا دیگه اکبرم اینجوری تمام درس کتابم وقاتی میشه با همکه. من همه زندگیم هم با شو وقاتی بشه هیوی نداره نه این کاغذ اینش تموم شده فاطمه حساب‌های من میرسه به هم. حساب کتاب من شما نداره که شما حساب کتاب تو بکن اصلا هر چی تری زیاد آوردی بده من. مدیونت که نمیخوام باشم که. شاخاله اگه خیلی خوب بکشه من برم. کجا بریم؟ خونه دیگه منتظر ما، بگو چه موزفتن اونجا رو بزرم کشی؟ شا عجله ببین من میدونم میخوایش میدونم همه کار واسهش انجام میدی چارش داری؟ نه به مادرت چی بش بگم تا بیری خونه خودتون اونم میشه میاد بعدش؟ خب بگو تو نالا رو خیلی دوست داری فقط الان یه خورده دست دست میکنی تا ببینی تکلیف پاد چی میشه. شایخان این خوب میشه. من قول میدم. تو فقط یه صبر رو این خوب میشه. ببین میدونم. تو هم یه خورده صبر کن. من بهت قول میدم اگه این خوب شد یه عقد برات بگیرم توپ تکونش نده. مطمئن باش. آقا مطمئن باش منم خوشحال میشم. من که غریبه نیستم هم شوهر خالاتم هم هم اون روز که قیافه بابا رو دیدم فهمیدم که زدن رعد و برق و نی بارون کار خودشو رو کرده و یه اتفاق بد با افتاده. بچو ببین تو ببینم. بریم تو. سلام. پسر خاله‌اش چه خبری بردی؟ نیو مادر. موبایلت جواب نمیده. ناخوش بود نیو مادر. چه چیزی شده؟ دکتر شما گوشه گفت گوش نس گفته دستا نگرفتن سالا. علیک، من گفتم گچ گرفتم، من همچین حرفی زدم. گفتم فقط دکتر گفته نمیتون فوتبال کنه. خب بتا فوتبال بازیکنه پاشو دوباره شارژ پاک کنم که چی؟ بیوار. راستش اگه چالش خوب نبوده، بابا سر همین قضیه که نمی‌تونه دیگه کاش می‌گفتن گچ بگیرن، هوای نش دوباره بره تو زمین. مردامش میشه بهترین دکتر میگه گچ لازم نیست. بعد بهش به زور بگم که نه، حتماً گچ بگیرین. خب میگه لازم نیست دیگه. چای می‌خوری؟ دوباره چیه؟ لوسیه پول اومدنه. بکش. از رفته ماس بگیره باز بیاد می‌کشه. تو فصفره ببر بر کن. می‌گی دبل حجا میگه پنجشنبه جمعه هفته دیگه هر دفعه ساعت داره چیکار کنه به نظر من اگه پنجشنبه بهتر جمعه رو بیشترش جمعه کنه میگه ها خب من خب چیکار کنم که بیشتر باشه پنجشنبه من پنجشنبه باشه بهتره من چهارشنبه نمیرم مدرسه منم کمک کنم لازم دیگه هم کمک کنی بگو پنجشنبه یا جمعه حالا حرف میزن اه بابا خب معلوم کن دیگه میخوایم لباس به تو من چون هر نیستش نیستش آدم تو زندگی فقط یه بار عقد میکنه من؟ اتفاقا چون هر دنبیلی نیست آدم یه دفعه عقد می به خاطر همین میگم حالا میشنیم حرف میزنیم. اون مراسمی من خواهر خودم رو میخواستم تا یه طور دخترت هم یه بدتر بیشتر نداره کم نمی سازه یه عقد ساده می‌خوایم بگیریم سفر چین که نمی‌خوایم بریم یه بلیط میگیری. 8 ساعت بعد چین شانگهای آقا اینا میخوام با همدیگه عقد کنن بعدش هم به قول خواهر خودت, خودت. دیگه تستی کنین تستی تجریه خوب ماست چی میگی من منتظر ماست نبودی بفهمید بابا چند تا شماست سر سفره عالم خب بسط ليش بدهم؟ بله. بابا. دي برو برو. بابا بده. بابا. برو برو برو. خلص. برو برو. تيش بده دوش. دوش. تو دا تمام چیکو پیک زندگی منو میدونی. من از مال و یه دختر بیشتر دارم؟ پس من چی؟ گفتم دختر. دستش شلسی همینجوری اومد سر سفره. خود دیدی که تا تو اینجا تو حوض بودی. آه. آقا مگه تو پسرت نیمت ایمد خواستگاریه نه من گفتم نه نمیدم من خواستم میره اونور یه دلیلی داشته باشه برای اینکه که برگرده نه بالاخره اومد خواستگاری یا نه من خواستم نامزد بشن که اگر اف اونجا ول نکنه به چستو به نه نهنا دختر من آهن روباست مگه نه پسر شما اومد خواستگاری یا نه بله خب خدا پدر تو بیامرزه. آقا ببین بهت بر نخورها من مربیم آنالیزارم میدونم چی کنار چی در چه وضعیتی قرار ما. بگیره نتیجه بهتری میده. به می چی و می می چی میخوره؟ آ تمام! خواهیم. خدا الله میدادی، خانم نتیجه میدونی. ما تا ما قبل هر فامو مزدیم. الله پس بدومش نشد. چیو داری دوباره شوخ میزنی؟ اون موقع پاشی انجوری نبود خانم. الله پاشی چی شده؟ شیکان سکات شده. باتر! نه خیر، گفته گرچه هم لازم نیست بگیره. آقا. دو... دکتر گفته دیگه نمیتونه فیت بازی کنه. گفته یه مدت. یه مدت یه روز هست یه عمر ماست. توش شما که فوتبال بازی میدونیم میدونین که پاره و ربات سلیبی یعنی چی؟ یعنی چی؟ بازیکن فوتبال مثل اسب مسابقه است. پاش یه چیز بشه خلاص. بفرما. بفرما. یعنی چال کرده؟ یعنی چی؟ یعنی آقا اون پا پاره پوره. یعنی دیگه اون پا پانه پا میشه خلاص. کجا؟ خانم یه سنگ بزن. نشین سر جاش. آقا حالشو بپرس. حالشو بپرس. بهتره بشین. یعنی چیده داداش؟ یعنی عقد میخواه به نزی به بابا نمیدونم که حالا بذاریم نهارمونو و خوریم تا بعد بابا جواب در همسایه چی میخریم؟ چی می خواهییم بدیم خاوم چی داریم به اصلا به همسایه چه رفت داره بابا میخوایم یه ماشین بریم طلاک کنی. قبلش با بریم ماین فنی دختر دارم میدم کشکی که نیست شما نمی تونه فوتبال بازیکن موقع که قرب به هم باش کنیم که حرف فوتبال اینجوری نبود الان نتونونه بازی کنه خ تو همیشه می مهم دلره الان که ما قلبا همدیگه دوست داریم قلب سالم در بدن سالم عقل. والا اون اقللا که تو نداری اگر داشتی میفهمیدی که پایت دا واسه فوتبال میکنید جیی؟ داداش حالا یه دکتر یه چی گفته آیه قرآن که استغفر الله نازل نشده کی داداش من عکسشو گرفتی معلومه پاش چه وضعیته تو عادت همه چی بزرگ می‌کنی چیکردم دستت سختبر مگه نبود اولو بشده بود گفتی دورجون سرطان گرفته دکتر گفت هیچ چیز نیست تو ده چربیه حالا بخوای عیب بزنی رو بچه خواهر من لا لا لله لا لا لا لا خانوم دهنمو وانه نکن دهنمو وانه من اي گفتم من اي گفتم يا اون خورشید خانوم که اومدن خواستگاری نانا گفت ماشاءالله دخترم این ماه میمونه فقط دندناشی اینقدر جلوه مگه سرویس تلات رو نفروختیم دادیم دهنش رو سرویز کردن دندناش سیم کشی کردم یه دومیل کشیدن اقب اون وقت من عیب گذاشتم آقا من عیب گذاشتم حالا که اینجوری شد تا پاشو درست نکنه دختر بشنمیدم تمام من قبل می خو؟ صاف که نیست باقی برگشن سربالا میشه دهنه صاف به همون سربالاش همه ها نمیده های کنره پدره موزیون تو اگه دیره نمیخواستی ما تو مودلدار بزنیم با هم بیریم غذا رو خود میذاریم برگشن خودم مودلدار بردوزن کپ کلیستن روناده جوان بابا تمامن چشمه گیری که تا تا دیگه وقت نکویم چیزی. کلماتش آره. آره قربونش. آره. آره خدا. باشه. هی تینانا، کی تو وسطش اگه پل می‌زنه. این حوال خدا بیامون رو از اون درس. اصلا همه مردم مثل همان. هر چی اون آدم می‌زنه رو داریه هر دل دختر رفت میفتن که دل دختره رو افتادن به ناز کردن. خیلی بی شعوری خیلی بی شعوریا. اخه استاره کو صلات کن لوبیا پوله بخده بیا پله پخته بوده واس تو نیامدی به خودی فرستاده بگی بیا حالا قزاتو بخو خبره حالا من میرم خدا, خدا. به واسه نیام بزنن به برفی خودت نه آخه با ام اصفر اومدیم سالم نمی میره خونه نمی میره تو خاک بسو می هم میگفتی خودت اینجاست سلام کن آقا خوب هستی بس شما دل نکن زحمت کشیدین سلام سهم شما بود دیگه من دیدم تشریف بردید من آوردم براتون این حرفا چیه نه من خواستم بمونم دیگه سعی تلفن کرد اومدم عطرها میگم شما خونه داداش بودی داوود خان چیزی از سعید نگفت آخه وقتی ممدوس یه کلام با من حرف از رفته تو اتاق در ور سر داداش هرچی هست به من میگه من هم چیز پنهونی از تو ندارم همون رفته دکتر گفته یه مدت نمواد فوتبال بازی کنه ای پواس اینه بهتر که فوتبال بازی نکنه والا نه اون دفعه که زاد شدی که پارک کسی گاف گوسان کش شما که خودت فوتبال کردی میدونی فوتبال کاره اختر زنگ زده کیریه یه انگار ننید مرد اگه واقعا یک دوست داره به نظرم باید بره در, در خونه در خونه پیشکشش میگم تلفن کرد حرف حتی اگه حرفشم نمیتونه بزنه باز باید به حرف اون میشوده بره در خونه نظر من ها بله حالا کار نداریم و بریم اجل داری پر من قابل من رو خودم میارم خب برو دیگه خدافز شما دست شما در نکنی زحم تو عجله داری. خودت کافی با من مواد رو جوری که دوست داری بزنم. با من نیست او. یه بار لباس هم گیر کرد یه بارم هم چای دستشویی منگیر که. اشتباه ولی هر وقت میشنیدم. با داشتن موادش نمیفهمیدم دل گیر میکنه یا نیست. تا اینکه قیافه ویافه تو آینه دیدم در میگهدن احوال خوشیتخانم انهم دارم حال سعید چطوره بهتر شد سعید چشمد که خوشیتبه ها لان بونی گیرم من بچه ناراحت که نمیتون فوتبال بازی کنه این جهنم تو ناراحتی درک تو نرهتی نمیتون فوتبال بازی کنه بعد نگران آوروی من باشه که نیست شما که می رفته ساعت دیگه با آقا تی بیان آق خود حالا نه تلفن قراره مجبور نمی خود یا گفته لور بوده دیگه. یه مرد توی یه قدمی خاصشه ولی دیگران بهش میگن نه زورش هم نمیرسه این بند خود این با چی کار کنه؟ خواستش چی بود؟ اکثر رفتاش نه نبود. کسی هم بهش نه نگفته که گزارش دیگه مونده برش آبشار هم بکنه. زور چی؟ شاید چی؟ نخواسته بگه یا نتونسته بگه یا روش نمیشه بگه. ولی من چون به شما نزدیک هم به لخری ما فامیلیم همسای دکاریم حرف همامی فامیلیم حرف نگفته ایم نیست که با هم ندونیم یعنی؟ من چون تو رو محرم خودم میدونم میگم ولی خواهشم نیم مثل یه راز بین خودم بلونم خب میبونم تنا حرف دکتر نریختش به هم داداشم وقتی دکتر گفت این بچه دیگه نمیفروفیت بازی کنی ریختش به هم, هم. ها. بین خودم میمونه چی شدم؟ د انا لا راح تزين لا باخر شال انا مشكو لا لا لا لا لا انا ما بقول انا عالم سنجر بندزي مين انت اكيد ما ما ما انا ما نزله انا ما نزله انا ما نزله انا ما نزله انا ما نزله انا ما نزله انا صابوني اسك اونم که آقا یه چه دیگه ببنده ببنده من, من چی گفتم ها من, من چی گفتم دیگه چی می‌خاستی بگید به جای که بگید پسر من پاد خوب میشه دوباره سالم میشه خطا نشه بس بچه‌ من می‌کشید نه, نه آقا من فقط گفتم بذار پاش خوب بشه بعد حالا این آقا محترم به چی گفته دیگه خدا می‌دونه من حرفی نزدم نه شما هیچین اصلا شما حرف نزن بچه‌ من عققل تو صاحب کنه نه من من تونستم صاحب کنم آيو آقا داوود بگو دنبال بهانه میگردم. بچه من اینجا می رفتم سال متوخی خودت دلیل ناقصش کردی؟ من بهش گفتم پخشی تمیز کن خودشو. خب من خودم دیدم هزار و خودم گفتی جنگنده باش جنگنده باش بچه من فانتومهش میگی جنگنده باش بچه من فانتومه. نه تو چه کردی؟ نه خوشش. درد تسلیم. سر یه سال. بچه من بابا نداره. دلش میاد بیای. پخشی که ازت نیاز دارم نه خورشید گوشواره دیگه تو دیار تو بگوژا ببین من لالم من میترسم نه خورده بردی از کسی دارم اگه نگفتم به خاطر دخترم بود به خاطر تیمم بود به خاطر زندگیم بود داشتم همه چی رو سبک سنگین کردم که تو همچی چی اومدی سنگین زدی آه. سنگین من تو رو دروایی گیر کردم گفتم عین راز بین خودمون دو تا بمونه مگه اون مخزن الاسراره پیله میکنه داداش بد پیله است تو خودت می‌دونی من میرم توی مغازه صبح اول صبح, صبح سلام صبح بخیر خسته نباشید میرم تو مغازه چپم. این میات سر صحبتو نخ میده آخ به جان داداش آخ می‌ده. آ انقدر که تو به خورشید داری نخ میدی، اگه نخریسی زده بودی الان سراد یا الان سرد شیش‌تون دیگه این شهر زیر بغلت بود. حیا کن. داداش. حیا کن. دادا من روده. تو رو وجب زدم. حیا کن. داداش. مشکو. داداش. همو. داد... موها دیگه؟ در مغازه باز گذاشتم جون اومدی؟ کله پدره. بابا چی آقا جون دوری حرف غیر منطقی می‌زنید دیگه مگه میشه یه هفته یه ماه بازیکن آماده کنه فرستاد تو زمین اونم لیگ دسته دو شوخی که به چه مود چرا اینجوری شده اما ترس توش ترس خراب حالا چه جوری می‌خوای بریم مدرسه بابا من که نمی‌خوام امی... کلا بزارم سرتون که میگم نمی‌خوام کلا سرتون بذارم تو همسرم باشه همین تیمی رو به دستش یه مساوی هم نمیتونه براتون بگیره اون موقع تیم باز کجا میره میره لیگ دسته 3 یه خورده منطقی باشین ما هم دیگه خب نه نه خوش لباس را زبانت خودت حالو بارو میزن لباس که <تصفيق> نیستش که من قیمتشو همین الان بدونم بهت بگم که بعد آمارشو بگیرم خبرشو بدم با 2 سر رسید من خب بگو دیگه خب باشه ماند. ببین پوشکام ببین من چی دارم بهت میگم من خب فردا البته شو زیدو دارم میبرم دکتر البته ها اینجا همه تو کار میسکو رووال سلیبی هستن بچای خونه خیلی ممنون کش کردی منو آره خب آبه گوی لباسی منو مرد راست میگرخت بگو مرد راست لباسی من از وادشی از خوش نشون. خود خودت خوبی چه نیست خوشی خودت مرد نیستی که ببین بازی وارد شروع بارم. کرد آقا جان تو بشه من موج زدم بچه نمیتونم بازگون آماده کنم برای این پاس آن شما حرف منو گوش نمیکنی اجازه بده از من بگم باشه من به خاطر گل روی شما با این بازی خارجی نیم پاسی کار دادم خوبه ولی یه چیزی من به شما بگم این پا که پا یعنی با کلم بالا بذاره کنار تمام باز خاطر تو هر کاری میکن خبشه برداش رفز نمیدردش یکیسه توب برداش رفت درمی چشمه گفت تو شوهر خاله ناید برمیگرده میخواد بهت ثابت کنه میتونه بعدا زرف زیاد خوابیده یه خورده بی خواب شده نمیرم اینجا تا نری دوبال چی شده؟ خب حالا چه شده؟ هیچی. یه مقدار اون لواشک رو بکشون ورتر جاشو بندوز اینجا میگیره میخوابه. خدا نمیرم میدونم که راحتن وای میسن. باشه. به این دنبالش این بارون تو خاطر من رفت زیره این بارون به خاطر تو بود میومد اینجا به خاطر پیتبال رفت در شما برشت شهر پیداشید لطفن یکنه همیشتر رد و برگو باری میترد بودم همیشتر بودم اگه من از این وقت با سبزیر هایین بارون رد و برق از کنوی رفتم بیرون نهیم اجیدم بلا؟ <تصفيق> کجا برا بود من بیام که اومدم دیگه بی اینجا به خاطر تو ناییمدم ها به خاطر این اومدم که میدونم خاطر تو میخواد الان هم گفتم به خاطر این میتونم ای گفتی نمیتونم الان دارم پیر اون دوتا درخت اون دوتا درخت درمازد من داربرشم به خاطره نه نه بازی کردم نه به خاطر شما <تصفح> <وای> آ <سا. تصفح> ببین وقتی داری از زمین میکشنت بیرون با چوخی که نداره <تصفح> اینجوری که نمیتونی وسط زمین وایسی بازی, بازی کنی حتی که التماسشون کنی بگی آقا به خدا میتونم بازی کنم برای اینکه تو مهم نیستی که تیم مهمه ببین <تصفح> یه خط بین دوتا تیر دروازه است که هیچ فرقی نمی کنه با همون خطی که دور زمینه ولی اگه تو به این خد ردشه گله از اون خد ردشه نیمه اول تو بگه این خد ردشه بردی نیمه دوم اگه ردشه خوردی این قانون فوتباله فوتبالم عین زندگیه تعارف نداره اگر هم بخوای برندشی باید تا آخرش به جنگ فوتبال عین زندگیه کجا؟ کجا؟ چقدر تی داری می کنی؟ چقدر تی داری می کنی؟ چقدر تی داری می کنی؟ جان این نهان می سرمه از ایس بسه که حالا عقلش نمی رسید داره چشمه شما بیش گفتین نه؟ میخواستم ببینم چقدر نهانه رو میخواست میشه تو رو عروای خاک مامان میخیال چشمه با قصتش بشی؟ خیلی میخواستش با اون پاک نمیتونه بپره بریدم پا نمیخواست <تصفيق> برای گروهش نگفتیم؟ نه یه بار دروه گفتم دیگه نمیگه من خسته من مرچم که شدم. از بالا از بلندی میترسم. از افتادن میترسم. اونجا بلند نیست. چشمه پایین وقتی خوشی بابا جون دیگه پاستی اخ میزن تو این سرمون دیگه. دفعه ما، دفعه ما. من دستشویی داخل حیاط. یعنی من میرم اونجا دستشویی سرمو میخوره دیگه نمیخوره. سرمو میخوش، چرت میزنم من سرمو نمیخوره. امروز سرمو نه فردا تره میخوره. پس اصلا سرمو نمیخوره. چرا دستشویی داخل حیاطه؟ ولی اگه یه خونه باشه که دستشوییش داخل خونه باشه دیگه این اتفاق میفته؟ بچه سرمو میخوره. تو به خاطر خودم میگم. بابا تمامه. این شب هیچکی با هیچکی حرف نزد همه خودشون رو زده به بخواب چون صدای خور را نمی اومد منم فقط که آلو خوردم اونایی که میدونن آلو و شکم آدم چیکار میکنه، میفهمن این سکوت زیادم خوب نیست ولی خاله بابا خیلی خوب نیست شایدم خودش رو اینجور نشون می ده ممت ممت, ممت. ممت. ممت. باید باشا دا. باشا دا. باشا دا. شاید فقط حال آقادون مثل حال خونه ای ما و خونه ای خال خوشن اون از اینکه شهر تیم فوتبال هستیت خوشحال نبود اینو از سمع کش فهمیدم هر وقت نمیزد یعنی حالش خوب نبود بیارم نگاه نیکنم بیارم یه روز باید زن بگیری الان که نمیتیل میخوای نگاه کنی اقلتر تا به وقتش یعنی زن هم میشه گرفت از اقلتر نگاه کنم تا به وقتش باید چی بعد مثل سعید که داره نگاه میکنه اون که دیگه بابام نمیذاره نگاه کنه بابا بیخوت کرده کهی مرد می‌شونم؟ قدیما هرکی می‌خواست مرد باید از این بالا می‌پریم یعنی منم بپرم این تو مرد می‌شونم وقتی می‌تونم زن بگیرم تو می‌خوایی زن بگیری یا بپری توها؟ شما پریدی؟ اون موقع همه باید میپریدن. پریدنش تحسی نداره، با این وقتیه که می‌رسید همه دست و پا میزنم اما اگه درست دست و پا نزنه، وای وای. بابا من پریده. چون بیداری خیلی شوخی اش می‌کنی ها. شوهرت حق حرف داشت که شو بگیری. ولی دیگه سر یه پاک همه عالم و آدم می‌دونن چی شوت که اینجوری شد. آدم تو علم شنگه بهونه می‌کنه که ببین یه از اولش هم به دلش ن붙ه. این حرفو نزن. داوودو می‌شناسی. خورده برده با کسی نداره. به دلش ن붙ه میگفت نه. اون تو الان مرغشه پدر. فلفل می‌دی به من؟ فکر یه پاداش که حال بچه‌م رو می‌فهمی که بیا حال بچه‌ی تو رو میفهمه واسه همین افتاده دنبال دکتر خوب سایدا که ازدواج می‌کردم که نمیشد پاشو بندازه پشت گوشگه و خار من میداد پشت کو سیرا منو کم می‌کنه آره من اون چیزایی که دیده لچ کرده سویی پاشو کرده و تو یکیشون گفت نمیام که نمیام خدا به زوری و بر داشتش گفتم این زحواله باشه بچه‌ت دنبال کار استخدام استخدامش میگه اگه حالا واسه واسوده بگو پر تا سانتو داوود پیاتین چاپ می نذارم استوری قشقری نو بنویسم قشقری چی خاطر خب روز روشن رفتم تو انباری دارم با معرف میذار خلاق نمیکنم به ماشالله داوود خوانم دروغ کنه میگم همه سایت ها رو گشتم تو لپتاپم هم که سیده خیلی عمل کنن راست تو میرن مثلا من مشکلم رالپلند هستش مشکل را من با فوتبال که بابای شما چی کی حرفشو نزنی بده من اینا بابا ناموس باز نامه بگیره ببین آزمایشتونو ببین خودم بابات رو راضی میکنم راضی شه خیلی رایش اول زندگی با ایدرال شروع میشه اول زندگی داره استخوانی شما شروع میشه نه آتش نجانه هم هر روز داره سر میده اونه من وقتی برمیدم پای من اینجوری راست میگه اونم اش بپر بپر داره دیگه همه آنبار باروز کنیستش که یه رفعه یه جا آتیش میگیره اونم که همه آنبار خوب شده راست میگه مطمئن و خیلی باور نداریم یه چیز دیگه که با موهایش رو خراب یه. من کدومش؟ به زانویم میشه؟ نه. الان زمان تازه بابا نکن، نکن. نکن. نکن. یه دکتر. چرا؟ ای. بابا همچین مولایش رو کردم. امشج بذار زنگ بیفند دیدی. مشکل ربطی داره با شرط وعدهشی. بابا ربت. نه بریم. اومدم. من ربط دارم دکتر خودم. درست نیست. من دخترم نمیشه داره میخواد اگر میخوای به بگم برده دکتر خوب پیدا کنه که خودش دکتره دم دستش هم ماشناست چیه؟ تو چی شد تو افتادی؟ تو مطمئنی فقط به پاد ذر بخورده؟ من جون دکتره میرم اگر نه منگی میخواستم که همون باقش که هم درم پشت دست درم چه شد بچه شده نه نه خاله نه نموده چی گفته بچه اینجور شد من چیزی روش نگفت غلط کردی؟ چیزی گفته اینجور شده دیگه بله من غلط یه بهش گفتم بچه من چرا میچه از اونی؟ خیلی خب تو هم چلو میزنش نسازم سنگینه چی گفتی بهش؟ بقا نامزدن که به دایی با هم دیگه کردن بچه من نزن دیگه تو هم سلام اکبر آقا منم بابا مرد بابا مرد تو برنامه ریاضی دیدی بذار که دستت داداش شتا من چی به گفتن تو محرم خودم. بابا مرد بابا بودنه. بابا ايه سلام خدا خدا بخیر محرم خودم دراز خدا زنده داشت. این بچه چوپیش شما باشن آوازون که خونه نیست منم برم خونه نقاشی کنم یه ترون دو سال چی آقا کلی آبرو گذاشتم از خودم خرج کردم مگه می اومد با خارجی مگه همین آلرژی تو بیای بگی با سکور خارجی میخوام کلی تخفیف گرفتم من گفتم با خارجی بیارم برای آبروی شهر خوبه حالا نداری، باشه کنسلش میکنم حرفی نیست ولی شما شورت ورزشی میپوشی برید تو زمین آقا شما شورت ورزشی میپوشی برید تو زمین آقا ای بای واسه همین آقا سیدر برداشتام آوردم اینجا قراره کمکی بکنه به شرط اسپانسری گاوداری بعدا هم صحیح خوشوقتم خوش. یه به شما میده که بچا میشن تو پیراناش یعنی چی این حرف این حرف یعنی چی یعنی من عکس گاف به چاستم رو پیرم تیم بچه ها بگم بفرمایید من تو زمین بازی کنیم با عکس گاف این درسته آقا من اصلا نخواستم آقا نمیخوام خدای بای دو من نمیخوام. خودم شورت میپوشم میلم نمیخوام اجازه نمیدم برای آبروی شهر بد چیکار میخواین من دو... بخش شیری گاف آقا آقا آقای محترم بخش شیریه گاف که سرابچه نشستن تو خونه دارن نگاه میکنن اصلا تلویزیون اجازه بخش منظور میده. تودیدی شیریه آقای بای تودیدی شیر خرمید. درزم گفتن واسه دکترم جدیه تیم باید دکتر داشته باشه بله بله اون رو شما نگران نباشید من با برادر زادم صحبت کردم گفتم که حل رگ خوابش من میدونم بهش هم گفتم پولمون خبری نیستش یه خودی جفتی جورش آره اون رو خیالتون نباشه مهمه نیستش شما دیگه مشکل دیگه ای نیست نا در مورد فاکتوری که نکرده. خدا رو شکر خدا رو در مورد ساختمان شورا ما فقط نکرد که باتون کارش رو کجا بگیرید یه جای دیگه بره بهتره چرا خودت یه جایی براش اون جفتی جور بکن اینجارش یکارش میکن. میکنی چی آقا من با یه کارش بکن دیگه من بونگای که ندارم که گاو درانه بردنی سرگه آقا گفتم باشه دیگه همان آون همان آون ازت خوب شده مغازه نمیری دیگه ببینی خودت میفهمی ولی خب میتونستی بعد از مغازت بیایی رنگ بزنی نه؟ اون رنگ آقا اذیت میکنه من دستم کشفی خواد زمت چه بکش آره خب قبول دارم روی رنگ آقا اذیت میکنه ولی نرفتن مغازه تو یه دلیل دیگه ای هم داره درسته میرم اونجا مغازه خوشی دم اونجا از چشت و چشت بیشیم اصلا آره خب والا انقدر که تو خورشید راصد کردی گالیله ما راصد نکرده بعد میگه چشتم چش میشی از وقتی گفتی نه رو نمیدم به منم خوش نشون نمیده بهتر دیگه کم تر سریچت میشه انقدر به پیله نمیکنه چیه خودت گفتی دیگه من این من گفتم این یه پیغام دارم میری بهش بدی تو خودت بهش نمیدی. خب خاطر همون نعنا دیگه نمیشوام برم. می خب بری بهش بگی که این خونه‌ی عمریه رو اجاره میده یا نه. آقا جون چیزی گفته؟ آقا جون چه چیزی بگه؟ خب چرا زودتر نمیگی من اینجا رو رنگ نذارم دیگه. رنگزدان اینجا چه ربطی داره؟ آقا جون که پایینه منم میرم اونجا این اتاق معطلمونه دیگه. ببین الکی خوشحال نشو واسه خودت. اونجا رو واسی تو نمیخوام. پس میری بهش میگی دیگه خیالم راحت آره آه خدا شما منتظر خبرتم برای کی چی برای کی, برا کی میخواستیم اونجا رو؟ یه بازیکن داریم میاریم جای سعید اونجا هم که اتول درست ترمون نداره من فکرامو کردنم خونه خورشید از همه جا بهتره هم دمه دستمونه هم یه کمای خرجی برای خورشید میشه دیگه فقط نگی برای من میخوایی یا حواست جمپ و خدا خیزم با خانوادهش میاد اونجا کوچیک نباشه براش تو فکر کردی تیم من منچه سره یه نفر آدم دارم به زور رو میدم پس خانواده ای نداره که مجرده چطور من میخواستم اونجا رو بگیرم زن بیوه و مرد عزب و در دهن مردم و دروازه و چه و چه و چه رو انداختی الان که خودت میخوای اونجا رو بگیری مشکل نیست. یارو خارجیه یعنی برای خارجی میشه برای من نمیشه زبان ما رو نمیفهمه که بخوام واسه شعر شعر بیارن که چرا نمیفهمی مگه امتحان شفاهیه که یارو نتون حرف بزنه تاثیل بشه یه نگاه تا هزار تا حرف میتونه توش باشه این علی چرت و پرت میگه اصلا نمیخوام بگی نمیجام نباید بگی نمیجام اصب قبول نمی کنه تو داری بازی کنم برای جای بچه‌ش بعدم صاف ببری تو خونش مثلا آنده دغدله چشه چیکار کنم یه بزنم اونجا بگم بکاپین تو بعدش هم چل و پنج دقیقه تا اولین هتل راهه علیکی که میسکش که یه نفرم باید کنم ببره بیاره نمیشه که همیشه فرقی میکنه بعدش هم طرف مسلمون که نیستش که درست اینجام چیزی گیر نمیاد ولی آدمی که دیگه میره داروخونه میگه مثلا اینجام زخمی شده الکل میخوام یه ماری درست میکنه میرزه تو حلقش اون وقت اگر اتفاقی بیفته مسئولیتش با کیه حالا پس خال پاش اینجوری شده مسئولیتش با کیه بیا برو اینجوری نمیفهمه میگم تیم را افتاد برش میدارم میبرم تهران آماغا آتش نشانی همه آدماشو گرفته از اینجا مونده از اینجا روده آتش هم اندر سوال سر نمیگم به خاطر پاش آما همین سری الان بره فوت نوایی بایسته بشه نرسه میگم به خاطر پاش بوده شانس نداریم دا که حالا با خورشید صحبت کنم اون یه جور شه بازی کنه جاگیر شه تیم رلشه بعد من, من میافتم خودم دنبال کارهای سعید شامپو به من بده یه شامپو بده مگه قرار جبهه خونه با خوش باز بزنه؟ فکر میکنه قضیه عروسی اینا به کل به هم خورده. بابا ناسلامتی اونجا رو آماده کردن سعید دست نعنا رو بگیره ببره اونور. ببخشید مگه اینا قرار بود با هم عروسی کنن که دست نهانا رو بگیره ببره اون تو؟ اینا قرار بود فقط با هم دیگه ازدواج کنن محرمشن که بتونه فقط دستش رو بگیره. بقی هم نداشت. اونم تازه تکلیفش برداشت اینکه وای معلوم شد. وای که شما به خاطر تکلیفش همین تیمی که شده اصلا نه. پاش به خاطر تیمش اینجوری شده به خاطر شهرش اینجوری شده. تو چرا موم براهامو. خوشت میاد باشد هم ده هم بذاری؟ واسه چی سالم سر سرش میذاری؟ بگی به فکرشم دیگه. تو این میگرد میگرده چون دکتر خوب صورت میگیره میبر باشه درست بکنه. این درست نیست. اما این کی مایه آتش آوره؟ شاید یادت این دوتا دیدارم. من مجبوریم. مادر، مادر،, مادر. بکن بعدم حرف میزنم سلام پسرم. خب یه چه عجب یاد ما کرد آقای دکتر رفته همون قدمه گوشیش رو سایلنت دیگه کار واجب داری بخوایی بیسیم رو ببرم خب پس میگم زنگ بزنه اه خب سلامتی فوتبالیست نشوی دکتر فوتبال شدی اتاقا نه نه خوب خدا رو شد دیگه داره کاراشو میکنه بره سرخون زندگی نه کی گفته به هم خورده کی گفته نخه به هم نخورده یادمه یه بار وقتی پسرم و مهران برای خاستگاری از نعنا اومده بود بند کپششو گرزده بعدم سیزده به در آرزو کردم خودمانو به وقت سبزی سبزه ایدو گرزده کلی وقت سعید دیدم یه چیزایی عجب گره خوردن دل دختر رو پسر فهمیدم البته گره ی شعید یه خورده کور بود من رفتم که نباشم حتما لازم نیست ببینم تا بفهمم مثل بابا که وقت این عمره کم بگیرم می فهمه که درس نخونم اوو داوود چی؟ این بچه‌ها من قایم کنی نگراشین. همین سبا بولند در بگو. این بچه‌ها من دارم میرم. شو دیگه نمیدم. این بچه‌ها برادر صاحبله خودت. اوه 10 دقیقه وقت کارم همه کل یه دقیقه. خب چی شده؟ خودت بهترم دو چی شده؟ با فایسادی بریم دیگه. الو؟ شادی بودی؟ فایسادی؟ کجا؟ کجا میری میرید؟ زدی به مهرداد چی گفتی؟ فری، چرا افت داره؟ به ایرانو زنگ زد، بخاطر اینکه چی؟ کارت نمیشه. آره من نمی‌فهمم. این تیم چی داره که خودتو واسخ میزنه به در و آقا جان، تین دکتر می‌خواد. زنگ دادم برادر زدم که آره دکتر بیاد. تو فکر می‌کنی شما یه پیدا میشه؟ حتی منظور گفتی عروسیینا با هم خورده نه؟ من من گفتم فعلا. فری، من فقط بهش گفتم فعلا با هم خورده. احتمال اون فعلاشون نشدید. یه دقیقه وایس بابا. یه دقیقه گوش کن. نه نه. سلام دیگه آه ولی شما چه؟ بهارمای بهارمای بهارمای بهارمای بهارمای بهارمای بهارمای بهارمای بهارمای بهارمای بهارمای بهارمای بهارمای بهارمای بهارمای بهارمای بهارمای اگه گذاشته داری. بودی من اینجا رو اجاره میکردم الان تا در می‌زدید تق درواز میکردم می‌کردم نمی‌اومید. بابا بخوام برم که از رو دیوارم می‌پرم عین پلاغ. مهم ذریه که با هم حرف نمی‌زنه. زری جان، از زری از دیوار برای چی؟ نمیفهمی میگم اگه گذاشته بودی من اینجا رو اجاره کردم تق درو میکردم می‌کردم. تو کلاً حرف رسن که هرچی می‌کشن اساس بچه‌دلقتوئه. می‌گی بچه تو نباید می‌گفتی بهش. تو نباید می‌گفتم. تو نباید می‌گفتم. بلگش گفتش که آقا من دیرتر بیام که مراسم عقد رو گفتم آقا به هم خورده همین. تأکید محکد نکردیم امو جان او مطلب رو نگمز مگه معاهده بستیم بین هم دیگه که من نگم یه از حرفا رو نباید گفت مگه جنابالی تو سیزه سالگی شبدراری داشتیم ما میرفتیم همه جا جار می زدیم که ایشون شبدراری دارن نگفتیم دا که زری گفتیم به سرت نهچه یه همون الهی قربانش من خودش گو خودش هم زری زری جان زری جان جان تو بشم دروا کن زری دارا. دارا. بابا تو بگو بیاد در بابا خونه نیست بابا خی تلمانشم جواب نیم بده مامان تو بگو بیاد مامان هم نیست خونه تنها ای بابا خیلی خوب باشه این فکس رو بهش بده بگو دیروز آمده ولی چون کاغذ نداشتیم امروز دریافت کردیم بهش بگو به جایی اینکه دنبال بازیکن خارجی بگرده به اون دوستش زنگ بزنه بگه به دنبال یه موربی بگرده که مدرک مربیگری داشته باشه به جایگزین خودش باشه با توجه شدی؟ چی بهش میگی؟ بهش میگم یه مربی جای خودش میگم آفرین آفرین خدا آفرین دل سوختن و دیگه بلدم. با دلگیر کردن و دلگیر زدن فرق دار اون روز دلم برای بابا خیلی سوخت یعنی بازی کن خارجی دیگه نمی باشه ما دستم خالی بشه من میگیم ای دماغه بیسته ها با کفشت در بیار در بیار در <عزم> به فرمایی هم دستوی داخل حیات هم سرطاق هم و این جهتشون سرما خوردن خاله خورشی بیر قطعه چشون با ما میکنم خاله خورشی ده تو تحارف نمیکن بیا تو خاله قطعه چشون میره سلامه نه خودم میره دلش شکسته بود یا دلتنگ شده بود هرچی بود به دل رب داشت دلم میخواست یه کاری برش بکنه این سر بابایی بزرگ شدیم بزرگ بشم که تازهی پسر بچه بزرگ بشه اون موقع اینقدر چیزا یاد بگیری و ببینی که از هر مردی مرتر بشه پس این قصه ای که آقا میگه به پری تو چشمه چیم آقا آخ... آخ... جای جای جای داریم اینی قصه دیگه اون این ها بسته میگفتن که بچه ها بخواهم باید تو خواب خواب مرد شدار نبیرم واکرم تو هره آقا جون گفته به شما نپریدی ولی من میخوام بپرم بینجا میشه این چیزارو من نگی آقا جون اون موقع که این توی چشم سوار اصل میشدن نه الان الان دیگه لازم نیست بپره توی چشم مرد بشه وقتی خودش ناوردی ببینه مرد میشه وقتی بوده و نرسه مرد میشه وقتی ببینه روزگار چجوری باش تا میکنه مرد میشه آقا جون من چشمه نپریدم آقا جون دوستم ندارم بچم بده چشم من تو اون چشمه مثل زندگی مم. فقط باید نترسی و عین مرد دست و پا بزنی ولی من کم دست و پا زدم آقا جون من کم سگ دو زدم همه دست و پا میزنم حتی اونی هم که میره پایین ولی اونی که درست دست و پا میزنه میاد بالا رو آب و نظرشم میبره باد من گوش نکن، تو به هر گوش. رو که دیدم گیر کردن دل و قشنگ حالیم شد نمت بابا پاشو پاشو با دبریم مدرسه پاشو بابای مدرسه دیر شده پاشو اونو تازه گرفتم و سابونتم بخور خب پاشو دیگه یا علی پاشو خیلی دیر شد مامونا نمت کارم که تموم شد میرم دنبالش میارم ایش بوله اول کوشوارو مدرسه عین یه مرد بگو خواب موندم از فردا هم دیگه تکرار نمیشه. ایشانم بری رفتم نلاواشک خوردم نه مو نعنا خردم. اما الان حرف دارم. من هیچ وقت با دوست نداشتنم علمم ندارم. اگرم بازی کردم همین میگم به نزدیک بشم. هر کاری هم کردم به خاطر نعنا بوده من برای فراهم کاری نمیتونم بکنم. اما بخاطر دخترت هر کاری میکنن مثل مردم پای حرفم هستن این چیه؟ چی؟ اون،, اون چیه؟ این که بنزینه ببین اگه گالون برداشتی و بردی در در خونه من که دختر بهم به ندیم ندین بنزین میزنم رو خودم آتیش میزنم به خدای عهد و واید خودم چپیتو میکشم رود بده داخلد. داخلد. من داخلد. خالی کاری رو. من نامرد داخلد. دو آلمم من خالی کاری من موتور اکبر آقا آموردم اصلا مال این حرفا نیستم چه فکری میکنی؟ شما که میدونین که من شبا تنها میخواب اصلا نمیخوابم نمیدستم قبل میریزه کنم شهارش داری؟ بله شهارش خوبه میزنی میزن به مامانت بگو با شوهر خاله میریم تا این جایی بر بگرد با شوهر خاله کجا میریم؟ بیریم زمدر خونه آقا جون من میرم اونجا تو همکاسشو بگیر بیا اما محترک بر آقا بیام هر وقت افتادی و تونستی با لمبشی اون وقت برای نعنا هم هر کاری میتونی بکنی شما هم نگید تاره بابا کشید با اکسیجن و بیمارستان بابا ماربی فوتبال نشد چون مدرک نداشت از پریدان توی چشمه هم مدرک نداشت ولی خودش میگه مرد اونیه که ماربی خانوادهش باشه آخه ما هم یازده نفر بابا مهم شهرمونه که یه تیم فوتبال دار و مردم درشون خوشه با تیم حریف کار دارن نه موقع بازی چای مفتی و دلی میده. ده مهران با اینکه به دلش نیست دکتر تیمه بابا جایگاهی نداشت ولی هر بذارش. کاری میتونست برای تیم میکنی. بذار، بذارش. یه چیزی استرس مهم اینه که تو دل مردم جا داره. نه نه سعید دیگه همیشه با همه. چون دلش با همه. سعید نمیتونه تو بزنه ولی خوب. اون فقط می‌خواد داخل خورشید نشون بده که توی دلش جا بود این نفس منه این عشق منه این نفس منه این عشق منه نفسات آقا آقا اجازه بده اجازه بده اجازه بده شاید خاله به زودی زن شد و گسته خانوما رو تو استادیوم را می دن. دیگر